اللّه اکبر. خلاصه از کلمان اخباری شدیم از برای اخباری مونده به در بر باز آن که شما جز در و روشه که انصافاً مصادفی رو چه اینها دارن خیلی علمی نداره و بیشتر در دنباه های آتفی و احساسی و خیالی و این جمعه ها در شاکنه و با مراجعه دقیق به بایات و موجود این ادعاهای جیشون فرموندن انتباه هست این قداسه و احساسه نیستن اما راجعه به بست خود حسیت خبرواهی هست کنم دیارش در زندگی ما مسئله خبر نقشه احساسی داده که انبابه نظر مسائل مسئله رسولی بدون شرک ما مخصوصا در علم معقول است. اسطلاح نمعبول بیشتری اقتماعی ما بر معقلها تحصیل هم بخش خبر واقعه ده و اسطلاح هم نظر کرده این خبر واقعه بوده شون خبر یکی در حده پراهن دیگری نباشه و ما مثلا شماسه هم رابی راوی و پراهن دیگری نباشه در این که خیلی از ممکن است با زمینه قرار هم حتی ما پرینه بساخت راوی موجب به اینوشه اینجای بحث میتیم تو اینجای بحث نداره و سنونی که محت کلامه است که پراهن دیگری نباشه که دیگر اینجا برشگاه بخص یک مدتر افتران صورت مسئل کردیم با در حالت رو انشاءالله مسئل خواهد شد اون بسی که از هست و این بعد از دیگه ما هست بعد از اسلام موجه بعد از اسلام اصل اصله این مدتر انکار این کار نیست جایی ایشون شبهه نیست که خبرباهه نقشه بزرگی رو در زندگی ما از نظر این داره واقع شده اونچی که ما به صاحباش بردخور و داریم یعنی اون مشاهدات ما که این محضوبه یعنی شاید نسبته اونچی که ما خودون میبینیم و درک مصرفی میکنیم با منخولات ماش، از یک فرصت باشه بیشتری معلومه ما منخولات ماست نه اونه که خودون نظرک و مشاهده خودونه پس یک یعنی نخشه داره و در خود آیات مبارکه قرآن یکی مقداری راجع به امم صابقه صحبت هایی که شده مطرح شده آمده اگر قدام توفیر دادر بحث از بحثا این مناسبت یک روایتی از پیشن برد هم شده خدس و علمانی نسلاری ولا حرچ این موشد مختلفی داد اکشار شد شده به بحثا اکشاری بکنند بحث شاید اون حلیث هم ناظره یک مقدار از محسابه باشه که ما هستم. اگر متونش با هم بشه باشه نخواه که خوبی داره از کلمه های شماید فرصتی دیگری متون و معایسه بگیم و نقاط نتیق تاریخی داره ب... به نظر یک تصابه باقت نظر مجموع آیاتی که راجب امم است؟ هست به خود اصل خبر اون که ما الان در قرآن داریم ای بیشترون آیه اینجا اپنو خواسته موندن این بده بیرد این شعر از بلا که خداقات یکه علمان راجبین آیه کردن و اکی بیار در محلل یکی هم به آیات مثل مثلا نفر نفر فلالا میکنه رو و به آیه نه از این استطلاف با آیه نفر مبنی است بلایی که آیه خامل یک هم بشه این رو بگیره. این او اهم باشه است خواهت در اول کبر خلاف داره موزه احزابه خلاف داره در این آیه مبارکه, مبارکه به اصطلاف به مبارکه این آیه مبارکه است به خبر یعنی اجمالت در برآن داری به خبر یک صحبتی شده این من کلامی که این صحبت فقط جنبه سندگی داره یعنی مفادق آهی که است که در خبر فاسد توقف کنیم یا جنبه ایجابی هم داره یعنی خبر آزر روز توقف ام اون این زمینه بحث گشه و از و اما الان در خود آیات اون چی درد به دستلاح... چیز بخوره اینه از بازی با آیات تیگه بزرخی برد میادش و مجمله ها این اون آیه‌ای که خیلی مربوط میشه به جد خبر همین آیه نبره بقیه آیه ها خیلی ضروری در این چند از بحث این ما در جد خبر جد سر فرکی یکی سرف داره مثلا یه تفقه و فضیر ممکن تاثیر داره مجرد نقل حدیث از رسول الله نیست اون اثر داره و فتسون تقیی یا فتواش رو باید میکنه ولی اون به رو اندار در اندار با بیان فتواش نه با بیان حدیث رسول الله یا مجرد آیاد نه برداشتی رو تسبران می کنه برداشتی رو گرسان نزید که این خیاله بعد سوزیاد که حدیث اونا بردین مورد برداشت این را چه ای به مجموعه آقایات که معلوم میشه با همین نقطه اقلاعی که ما از خرمی تحکیب داره یعنی نقشی که خبرد از دیگه علمه ما داره میشه بایی توضیح برطاریم داد که آیا مجموعه آیات را همون فهم اقلاعی نازه شدند یعنی همون نقطه اقلاعی یا تو اونها نقطه زیادی هست اختلاف داریم اصل اختلاف در این نقطه هست آیا مجموعه آیات همون فهم آمداری یه چیز زیادی که کردن بوده اگر فاسم بوده رو بود شما در خبرش خوافتار بکنیم ولی مثلا اینکه دو فسر دیگه این, این همیشه انسان در یک جهت از رو در خدا خارج شما در خبرش خوافتار بکنیم حقیق بلا مثلا از این شوافتار بکنیم مهزده خبرش خوافتار بکنیم از این شایده آلا این راجع به این این معظم مهم آیاتی در بران و اما در مجموعه روایات از پیهن برکیم هم توی مجموعه ی روایت پیهن برکیم یه تعاونی هست مشکل در این که به این مطلقه خبر و نفشی که خبردازه ترکیم بوده ها یا توجه منفی یا ترکیم مصبت یعنی که که از به خبر کردن که که نفیه و جمع خبر کردن این هست در بعض از آیات روایات و از فیل انبر اکرام هست البته ما در بحث خبر حسابه هم قبل باشم به طور تبیهی همچنکه دیرون پیموزم از در بحث دوم در عرضه بودیم حسابه تو بخص خبر در بخصی که حسابه جدیدی هم این طور کنیم راجب تا آروز این نقطه من چند که هم خوب دلگت رو راجب در روایات چیزی نداره یه مهم، مهمه نقطه واجد اهمیت در باب تا در روایات پیغنبر چیزی نداره یعنی نه از پیغنبر ما روزی تو فرمودی روزیگی تو فرمچکار به امام داریم ما در روایات ما از امام صادق ساعت نکنیم و حتی از این نطور در کلیگی در جمعی ای که ما داریم نقضه هم نداریم الا توی ای واحده ما مدقایی زرانه من در حدیقتین متعارضه حدیث تو قوال داری بود ابن هیچه دیگه هم, هم, و هم زیادی و من باید به گرده چی بسون کننده زیگه گرده چی ما از مطرده این نمیشه چه در بود باشه هم نداریم درد تعارض خود هم نداریم یعنی هیچنبر هیچ شکتی از احد در روایات معتبر چیزی از فهمر شده تعارض نم حالا ما چه کلمه بودن؟ چون تو روایات که فیغمبر فرمودن اونی که با متاعدد کتابه احس بکنیم، این که اینه ما داریم اینه ما در روایات ما داریم که فیغمه این مردی ما متاعدد با کتابه شدمت فیغمبر صحبت نیم کنیم. اما این تنبیر که خود فیغمبر و چند روایات من اون که کی با کتابه هست. این نداری دراکو نداری می‌کردی در روایات معتبر اهل سنت چرا آه روایات در کتب عام چون 10 سال, ده سال فاهم در خارجو فعلا نشایه‌ای در کتب عام در نمی‌کنه و ما داریم دیگر چواس دیگر در روایات ما ماذون کعیمه اصلا پیدا ما اینه در کنیم منقسمت هایی که مخانه یا حدیث که نه واده رواده ها شکر تنگیم رو میبشیم این بیست که معلوم بشه چی و چی ها ببکنیم خود اهلسانم نردم که بارم ارز کردم اهلسانم ویشکریشون قارب ترجیح در تاز چون زیادش کن گفته شده و تا ترجیح در نوایات ما و در فواهی ما حسابه اصطلاح از بعد از اندام هستن بیمه از فرمه به بعد از ورمه هشمه ارزید که بود باز شیخ سوسی رو ترجیح خون این است اون ترجیح که ترجیح اقلید هم نیست روایت نیست این که از به نظر رواید ترجیحه اینا از ورمه هشمه به بعد نهون به بعد که اما این اصلا ندارد. روز ترجیح ندارد. اما وجود ترجیح زیاد از که در ال امام حامدی حاشیه دخوری و همه اسباب عصر بودن اول عددم رفتم. اوجش نداشتم، تقدیراً این توافقات تغییرات فقط اون است که ترجیحات اعتباری 80 خرده ترجیح رو ذکر می‌کرند اما هیچ خدایتی منصوب نیست رهبران اما ما داریم ما تایید روایت تفسیر بنام کردیم ان شاء در محل خودش پس یک بخش راجع به سوالات ما درمیان مصادر اصل سندن تا عارض نداریم بلکه ظاهری هم یه از ما چی این طبعه. بلکه زاهره. دو تا است که که انما مفروغان تا نداره یکی در نبدور بلاقه هست اما من دارم. کامپیوتر یک رو یکی از اوساقی کمی رو بر مسئول الله همین مؤمنی وقتی توصیف میکن رسول داره چنین چنین یکی از ارساقشون اینه وله تناه داده رو تعارض در خود برحان هم تردیه از تا از تردیه برحان شده در کارم اندلال فیه من اندلالال لبجت او فیه اختلاف, اختلاف شده در ولا تناغذت اقوالو ای این معیل همین بحثیت که من ارزو کنم اصلا این مهمونی که از صفات پیغمبر میگه پیغمبر درسته 23 سال بعد از مبعض تا لحظه وفاتشون اصلا اقوالشون متعارض نشد ما هم میگن الهیه یعنی مهم تا این برای اینکه این وحی الهی در این مدفع 23 سال در این مدفع خطفه چند راکه بکنیم در محض و راقه محض و راقه برادر ثنا کرده عربانو برادر ثنا این اشاره به مقام ممت... در مقام الله که اصولاً در تیم این مدل می‌سوزد سال عربانی چند مثنا این یکی از کتاب‌های شریف نی تو خاطری یکی تو کتاب شریف من <سؤال> مزنصره این سال میکنه که رنگ رونی چه راه رقای فرسولا در وقت خلافت این رو رو بعد پس تحلیم وجود رو نعمل میکنه که یکی مثلا اشتباه کرد اگه بپرمه اشتباه درست برداره تازمسه یه مدینه حکم بوده بعد این حکم نصف شده این خبر نداره یکی دروب میگفته یکی مثلا دسته من که در تمام حالات بارست از این تنبیر همه رو ممنونی معروف که تناقض در خود کلام رسولان نیز بحثی باشد این خیلی نقطه زنیفیه یعنی تعارض در روایات فیرمبر که شه سنت اگر دیدیم همه اصفادیه هم. از این سبوتین این تناقضها و آروتها تمام بردارم بکرد رسولان این خیلی نقطه هم. از چی میسی در صد رحمت بوده من از این راه هم که انسان نمی‌تونه در ترجیح که قواعد باطل کنیم این را باطل کنیم، چون ترجیح کرد و از این عبارت نیست هوچه بالا هوچه حجت هوچه نیست. زمان پیامبر کن بعد که رو شده؟ <تصفيق> ما در واقع یک شیعه داریم یک جهت ترجیح، ترجیح کرد هوچه دارد اینجا و بجرد و بجرد و بجرد نیست. تنویز است لاوگرست اشتباه رجرم لاوگرست این فارضی دارم اشتباه رجرم جز فارضی این <تصفيق> یک مطلب خود کنیم. یک دیگه که ما دو مسئله داره مسئله یک مشهور من کل من. این عبارت مشهره که مثلا در کناهی من این روایت مشهر بر و به گفته این من تلوه علی محمدم جز روایات که جای تواتر لفظی شده این در کتابی که این بزروردت می کنم موضوعات این جوزی 60 پرشت داره یک را اسم که این حدیثی نرده میخواه شده شده هر کزا باید شمد قریه مثلا حدیث قریه نرده حدیثی که همیزی نه بکنه این مدوم برای از یکی از احادیس خیلی مروحاتی که داره که ما کلا حدیثی نداره که پنج صحابی نه کرده باشه ما هم حسید دارین حدیث من کرده برده این مطمئن بدن اصلا مرادشات هستن اصلا نیده نسبت هم خوب مرادشات باشه و اگر اگر واقع نظر از سهت سنت باشه مجموعی ربایی هایی که الان از صحابه نه شده. در حدیث من کنتو مولا از این بیشتره من کنتو رو از کنم چورم از ماه همی شما رو از داری که درسما رو جده ای که قدید در مداز درو و داره در اسم داره خدا همان کنم همان صدقای عزیز رفیارون از آقا همه چه شیش کنم بیشون مثل بایدن صد در حقیقت اون حدیث من کنتو مولا صد و نه، یک بعد دیگه از سنازی اضافه کردن این مدل نسیجه یکی چه موسیکو بشه. درسته، چی شده معلوم است شده اگر این مدرسه اینطور نیست. بعد اضافه شده شرکی امروزی کیشون بوده. به هر حال این راجب این حدیث هم احتمال داره، این حدیث از کردن اولا راجب این حدیث یه نزاعی بوده که برتان. تقریبا تقریباً می‌شیم و بیندازیم. اونا خیلی کار نکرد اون نظر این بود کارشوش کلمه متهم بدن هست و من کرده بعد این یک طریقه من یا من کرده بعد یا من خاله علیه مانم اخور این روی ام داره مانم اخور که واقع در نظر بود در این کتاب نرو کرده از و از این <تصفيق> کتاب ظاهره بود از عهد صحابه شروع میشه این ای بز و شما رو بودازه نمیشه یعنی بخش نمیشه نمیگه تو چرا بودی متهملا تو چرا نگفتی مثلا از زوگه در شده گفتی که ابدالان زوگه به فدرشتی گفت شما رحلیست از اونیتان به در فسرمه رسولان میگه میگه من میشیدم به من که در اون متهملا من که در از خود علمه احسان هست که در روایت من متحمله از این بحث هست اما خیلی معنوع و شدید ندارد ما در این کتاب انواع احسان هماملیه این کتاب خوبیه اگر روح کردن بخونن برای مرفض حدیث کنن خوبه حدیثی که شروع روزه اون نوازه افرادیست که قادر بوجه به خوردیست هم میتازه. حتی مخالف بانیوشتن عریضه از اون هفته مثل عوم هفته مخالف بانیوشتن بود این هم مخالف بانیوشتن این ابو حرساندن محمدیه خیلی ما آسیبه حرساندن حالا چیز که دو برماغی ما بایدشون که چند های که تنبای روشن بیگرن اصولا دو جورن. یا یک دیشون مثل ابو حرساندن محمدیه خیلی میتازن به اینها از در اون طرف استرار داره که نه از دو صحاب هم به عمر آمر رو بودن که این روی که حلیثی می گرشتند و اعتماعی برندیسه دو سبب نصد دارن این کتابی که در اصافی حلیثی در برمی اصافت هم دیدن و را این رو بودن دو که رو این طرف بود استرار داره نه هر با بوده با آمر درو داشتن حدیده گفته باید همین درسته این شمال همین آیه محمود عبوری به سوزهی کتابه بیشتر دومار محضوع مند کرده در حلیت یعنی بدونه این متعاملن ثابت میزه خب هست یه همین کتاب ها الا ماشاءالله چیزه ایت درسته ماها باشه همین چونیشون مقداری از همین رواست رو بوده اندازه گفته ما تنها حدیثی داره که واردوشون رو هشهر ممشنه نرک کردن بعد شاید حدیث قدید حدیث اینطور نرکشه احساسایی جهرش فرمان هم. حقیقی رو بوده و توی موزن, موزن این ما هست یعنی شاید نزید نورد درستات که موزن بودند این ما بیمدن این کلمه ما موزن بودند این اساس برده پس یه بحث راجعه به مطمئن حدیث داره که به جمعه همینطوره مجموع مختلفی داره یه نفسی که باز برمیگرده به جهب خبر راجعه به این که اصولا چرا به خبر این تحریه رو پرمودن؟ این نقطهش بود؟ توی روایات ما محسوسا در از در این روایات ما تشکیر مارد یه تحریم اجازه شده که در کوفه زیاد دروب به ما گفتن و اصولا مثلا ایمان علیه مسلم امام مارد که بودن فران فران درو بودن امام که بودن فران فران پیشن اصلاح رو بودن یه مردات رو به بایات ما تحکیبون اینجه هر شده تو تقرد بکنید که تا آرود به بایات ایمان علیه مسلم به اخلافاتی که بیرده شده بخاطر کسد کسدابین و دروبه ها و خالق آدم آمده کسدابین آمده این تو سبیه هم ما تو باید که بوده این زمان پیش آمده بودم، مادرم شیب می‌دادم. را راه دراز برویم. تا قوم فیهم ختیم که آیا من تا کرد یعنی این نشون داده میشون که این زمان یکی در خود زمانم فهم برا که من مجبور بودم. تا اینکه پیام برای کردن کار اینطور باید محقق شوم. از که من باید این مطلب که که دارد کردارون شان مطلبی و نطری رو عرض میکرانه مطلبی که دارید بلی این مثلا موقعی خودمون به حسن هست رو بدونی باید به دو ترت اطلاع باشید این مطلب که که که دارد کردارون از آقار رسوله آقار رسوله یه کلا از بزنید رو چیم حدیث من که مهلی رو دارم کونید اصاله یعنید نکنه و چون تو باهی اصاله رو دارد. این نوعی من کرده مهترملن اما این نکته که از زمان پیغمبر دروغ زیاد بفتن رو چون دروغ زیاد گفتن خواهد رو که ام حال تخوه آسانه من کرده و این روزی مدرزونیه که ما روازه استفانه نباید برسونیم یا با روزه دیگه روز روز روز افضایش که اگر با اونا رو شدیم چی داریم چی دارن اونا دارن. اصلا ندارن کل این محطبه که دروگوها زیاد شدن که را از کزامون رضا رسول الله فرمون من کده به علیه متعاملن کلن اینو ندارن خود این مقدمه که در برای ما آمده من اصلا در برای آسی ما نگهرم کنم نگهرم توی کتب باشه اون چیزی که اونا با اونوانه به سه یک مورد واحده این ما، این که بگیم کس رو باید کس رو که اونا نرمونه مورد واحده این در زمان جادریگر دستا منطقه کریم و محمدینه موزه یعنی دو سری خاصه زنی خاصه این می اونجا اول مغرب میگه من اطراف می روش کنگی من هدیه الله با من اطراف رسول وکیل هستم و, و فرموزه که چین و بعدا فرموزه که مثلا من دامازم بشم این رو در این بعدا یکی از اهل حکیز رستا میادن منطقه میدارستان درو حالا اینجا دردش می رفتن که حیرتان بردان ورگر به با بکشه شیاب هستن اگر با با و این آمندی که به این موضوع شب برساده از ما رو حالا من یعنی یکی دو تا از طراح حدیث بین احسانت رو از همی شخواب از موضوع ها که دی ما بود یا از موضوع روجبه احسن علیش خود را میجوذیم، ولی مگر دریک رجبه انواعی حذابین، انواعی که، انواعی برتر، که من چند رجبه مراقب تو فیض و تو زیبایی مان کاری و برتری از اولام میومیم، میومیم نمیخونم. لطفا، یعنی این داره؟ بعد از این کذابی رو برزایی میکی نداریم در هر ما نداریم اشتباه نشان در این هزه کذابی رو بله یک نظر این هست من اطراف حراس جویبار حراس نه جویباری و برزابان خیلی پرده شد چند تا سنت هست روی تمام مطالب که از جرد حدیث میگون مناسب درست روی خواده برنگو هم سوار باشن و این طبال هم آنسوا هم با که برنگوی کاره یعنی اینطوری جلد به دیگه نه یک حدی برگه یک یه شواشه و درسته کسی کسی زمان اصلا نبوی کرده نتفر باشه چیزایی که خب تا تا بره های هست. خود ما همینی داریم همینی از این کسی کسی بایده و بازه بازه هم اما یه هم بازه نبونه به یک همی همینه یا مثلا یکی ایشون از سریده میاریان ما تو کسی هرده اکثر که منیون در خیلی در <تصالش> <علا> یا که ایش درو بیاد بیشتری درو بود در شریعت تویش هم گفتن از اینکه دنبال کاروی سری و سروف از اینکه از در باید. حالا که این من... رو یک میده من بایش این ببایر عشیب یه حالا در این که چون طور یک نقطه ما اینجور نداریم این بشه این تنسیه شده که کذابی مشهور رو انیشتان شادن ما بودم این تنسیه شادن کذابی رو گفتر کذابی داریم مشهورون ما این اشتباه نشه ها این یک اشتباه یک اون ای من که دوش آمده میده اعباره اینها رو میدونم اونه یک آدم ها که واقعا از جیوامری بدده حدی که بیده در پیش حد در حیار و مرز و مرز و در حیار رو قسمت ها این نسبتا از این گردش کتاب خوبیه لیکن اشتباه نشه که ما نردادیم نه این چه اون یاد ببینیم مثلا این توی خلوم و حدیزه ما درم همین طوری درم ما درم این طور میزدرم این را من اینکه و اما رایی به قصه چندوان مرد این این اون را ما که مرد نهبل بشیم مونموند برایده نهبل بشیم مونموند با را بشیم خوب صلی علیه و في كده و که امضاء کنه و کارن خطر امرات همه‌نحو سر جامعیه فاکبر می‌ذاره جلو فهم می‌ذاره حتی نزد عالم‌رهن فاصله آمیل را شوید رو ف انجام این همان فجر و کلی لودر لودری است. اصلاً فرمان رسول اون جسدش رو سوزون. فهند که رسول الله صلی الله علیه من که به علی اول متهم دم، پریت خوش آورد. حالا که اینه که اونا یک میکنن یه موقعه اونی من خیلی که خیلی نه خیلی فهم که داری که دارونه برد رسول این هم شوقتی هم این خدمت آدمی شما یک چیز هست من همیشه عرض کردن اینه خیلی درقت رو از مشکلات اطفالی خمید میگم ما اونی که رسمندی کنید در اسلام همین وقتی هم توزی همونی ما اول یکی در اسلام رسمند سوزوندن و انجام داده ابو بکره توی یک تسری ساخر رو به معتدین با جنگ با معتدین شخصی به نام فجاعه اصلایی می رو میارن مدینه که معتد شده دستورشون میبیردن شد اولا عربی شده که بچه که حتی با دار میونن بچه بچه که در بعد آتشی باشن که زنده نامت این خدایی هستن این در ساید خلیستان اینه سوزونده نموده زنده و نموده شده که بین صحابه هم زنده این کار درست نیست لا یعنی بود نام الا وقوانا سوزونده همهن خدا رو زدیه هایده و هر همهن دستون و نرد شده نرده های زیادی که عبوبهرد در وقت مردش گست سلاسون لیتنی در مرد فرمانه کاش بیره میگرم لیتنی در کجا درنا در محبت کجا اون حالا یا با من در تحیید فعل عبوبهرد شده یه کشتنهای با آتش هم در افتان است دادن با میگرد به فعل مثلا تمیزمون در گروه این رو با آتش سوزند. در در اون که اون میگن در بابه ارتداد بوده اونی که از اهل سرچ عدل شده در مورد مساله لواط در بعد در هر خبر در, در کتاب صاوه مامدار رساله مامدار و در کتاب محله ابن حزم چون تفقه قانونا نکن جای دیگه تو موعظه اونجا در حال که علیه در مثاله هم در رواد شخصی ازمان و فجاقه ازمانی که, که و این در حال مدونه این برای ما یه مقدار من این مقدار رو هست که بدونیم که چین راهی رو یه احتمال میبین بعد این سوزوندن که به نور هم نصول شده یا باشه به این سوزوندن ولی اینجا موضع شدونده هم فرقه و فرقه و فرقه و اینجا موضع شدونده نیموید من اکتمام باشه ولی چون بحثم تمام کده بکنیم ببینید من همون برس مثلا با سرن دیگه چی که چولانه میکنه ان عبدالله ابن قال یه رو من بحث هایی حساب ما من که در حدی فلیه سبب من مرحب اومنان قادر هشیق و رجلون امرهت هم فهتا ها ما یا مساه فقادر رسول و رسول الله سبب مهمان بشن او بیت مهمان و كان وكان ينتهى به تبعه به تبعه شب باشه فقال ترى را جون نمود نبی سلام الله علیه و آله فردا فقال ان فلان اتاه و بیای بیرون شما شاهد بود واسه خونه همون فقال کده یا فلان اون مطرح هستم والا زندگیم دیگه کسی فعنه همچنکه الله و عز وجل اگر خدا تو رو کرد فرداره او قنوبه و احرقه ولا قراره قراره زیره مجبور بود میشه نه الله داری و رینی این خدا منشونه ولا قراره ایلا کفی که یعنی خدا شبش از سر تو برداشته کفی که اینجا فعن به خدا دستار داده حالا ما هر کاری که بشه بخساریم رسول الله صلوات و این شخصی که برا بود بردیش زونه ت درکنه ما یا آل بس بود بس بود بود بود بود خرصه. خرصه. تو که انتر بر دوما و تو یا تو هرغ بنه سینن امشنک الله و دقت به و لا تو هرغ در معنی تشکرتی بوده و هر خودنا چه نگو لو یا رسول بنای درک بونند. مثلا که به معنای بس. چه نگو لو بود که دو معنی بود که بالا دست دونید این قضیه در نه دیگه و فجاعت سما شنای از عربه عربه آمدت با صدت یعنی باران فخرجه فرد و فلسه عربه اطبا فرد ما طلبه را سلام ها رو نه این آتیشی زن تباید تباید به یه در چند تا مردی داره که خیمانبر رو گفتو بر به سجونش بر سجون برید توی این در که خیلی دقیقا زدی زرافت محنها توی این مردی که از نه همه سنه نمیشی برون رو به سجون نمیشی برون رو به سجون تو تا اونجا تموم کرد خدا خودش شدشه وقتی اونجا رو داره برای و, و مورد پیغمبر ببین تدیگه تبربرم کلمه تدیگه تبربرم تو تفصیل علمان یعنی اون سوزونده بشه برون مورده سوزونده بشه تو تفسیر تو تفصیل دو, تو تفصیل دو که نه پیغمبر بین حورت نارو تو جهننه نه سوزونده ها یعنی این شخص حتی جذر ببینم نه سوزونده از که در این موضوع هست این در روایاتی که یکی جمعه به نمازه اشار که سنگیم برای که به نمازه که یک شد دیگه من بگیرم کونه دید دید که نمازه اشار نمید دوستونن لولت نصاب از اگه بخاطر بخشه ها و بخاطر زمانه بود این کونه هم دارن جنگی باشه تا پرامون هم مانداریم تو باید کما سرش هم مانداریم وکه یا تحدیده یا انصافت قبول اون چیزه بسیار بسیار موشده و سلام الله و